ونس لله رب العالمين الله على محمد سما دیاری این باقیه من صرف بوده عدل یعنی صرف صفت معلولت هم اصل عدل مانع میشه صرف صفت رو پس عدل با صفت با هم جمع میشن با وز عدل مانه میشه صرف استفتی رو که معدول است قدول کرده از اصل خودش یعنی از اون وزن اصلی خودش که مال اون کلمه باشه قدول کرده به یک وزن دیگه. عدل یعنی چرخش یک اسم از سیغه اصلیش رسول یک سیغه دیگر چرخش یک اسم از سیغه و وزن اصلیش به یک سیغه و وزن دیگری با اون که معنا هیچ فرقی نکنه معنا هیچ فرقی نکنه نه اینکه مثل بعضی از کلمات مثل کسبه که رفته شده یک تسبه معنا فرق کرده بچرخد از سیرده اصلی به یک وزن دیگه ولی معنا هیچ ذره ای فرق نکنید خب این معنای عدل بود میگه این با وصفیت در یک جا جمع میشه مثل چی؟ کرباع و مربع و کاخر مر ربا و مربع این کلمات رو در هدایه خوندیم ربا و مربع سلاس و مسلس و سنا و مصنا، و احاد و موحد از یک تا چهارش گفتیم چیه؟ قیاسیست از چهار تا دهش رو مثل خماس مخمس گفتیم کفیگین تا اشار معشر ده رو قبول کردند، اما بسریگی نپذیرفتن گفتن مقبول ندونی ربا و مرب هر دو غیر منصرفن مثل جا القوم روبا یا جا القوم و مربع جا القوم روبا ا جا القوم مربع یعنی چی؟ یعنی جا القوم و عربعتن، عربعتن. یعنی هر کدوم از این ربا یا مربع را شما در این مثال ببینید حال جا القوم و ربا جا القوم و مربع میگه جا فعل ربا و مربع یکیش حال. یعنی چارتا تا، معنای عبارت ربا یعنی عربعتن عربعتن اگر عربعتن عربعتن رو بگذارید توی یک ترازو و ربا رو هم بگذارید در یک ترازوی دیگر متوجه میشید که این دوتا به یک معنی یعنی چه شما بگید جا علاقوم عربعتن عربعتن چه بگید ربا هیچ فرقی ندار از این که اینها معناشون یکیه ما پی میبریم که الفاظشون هم چی بوده؟ یکی بوده؟ یعنی ربا در واقع مرحله معدول از عربتن عربتن یعنی عربتن عربتن عدول کرده از سیغه اصلی خودش و اومده تبدیل شده به ربا و این معنای وصفی هم داره دیگه چارتا چارتا بودن معنای وصفی نیست اصلا حال خودش وصفه دیگه که بیان هیئت. فائلی ها مفعول کنید که توی این مثال ما فائل رو پس اینجا وصفیت وجود داشت و چی؟ و عدود که وزن ربا و مربع از عربهتن عربهتن عدود بداشت اما اخر رو میگه و که اخر فی مرر تو به نصوت اخر مرر تو به نصفت اخر الان مرر تو فعل و فاقه یعنی به زنانی که دیگر بودن به نصفت اخر به اخر متعلق به منافت توست اخر صفت نصف است میگیم چطور شد که این اخر الان معنای وصفی دارد میگه ببین خودش صفت نصف است و اصلش هم یعنی دیگر بودن خودش چیه؟ معنای وصفیه و از طرفی شما میدانید که افعال و این رو هم خوندید که افعال و سه شکل میاد یا با الفلام یا با اضافه یا با من اگر الفلام نداشت اضافه هم نشده بود حتما با منه مثل اینجا و اگر با من بیاد باید مفرد مزکر بیاد دائما پس اینجا باید بیاد آخر و غیر از آخر راه دیگری نداره و ما که می‌بینیم اخر آمده است و جمع بسته شده پس معلوم میشه این وزن فوحل محدور از وزن آخر میگه ازل قیاس زیرا که قیاس و قانون قاعده بر این بوده که بیاد مرد تو به آخر زیرا افعال و با من همیشه مفرد مزکر میاد و خیلی از اون لأن اسم التفضيل میگیم چرا قیاس و قانونش این بوده که آخر بیاد میگه زیرا اسم تفضیلی که لان اسم تفضیله المجرد عن ال اسم تفضیلی که مجرد است از الف یعنی الف ندارد المجرد عن ال لام اضافه و اضافه هم نشده مفرد مذکرون دائما مفرد مذکر میاد دائما همیشه حالا چه میخواد موصوفش معنص باشه؟ چه میخواد موصوفش مذکر باشه؟ چه مفرد، چه تصنیر، جمع فرقی؟ این هایی که خوندیم بهشون میگن عدل حقیقی یعنی واقعا شما عدل تحقیقی یا حقیقی شما واقعا میتونستید حتی بس هم بخورید که ربا در اصلش عربتن عربتن میشه چرا؟ چون معنای اینها تکرار درش هست اما لفظشون تکرار ندارد در صورتی که یک لفظ دیگری داریم عربتن عربتن هم لفظش تکرار توشه هم معناش پس معلوم میشه که ربا معدول است عربتن با قاید و قانون ثابت کردیم همینطور اخر رو که ثابت کردیم افراد تفصیل باید با مرک آمد مقدر مذکر پس بنابراین این، اونچه که شما توی اینجا دیدی عدلی بود که واقعا هم حقیقتا میتونستید معدولشو بدی. اما یه سری کلمات هست عدل تقدیری دارند یعنی تقدیراً معدولاً فرزاً معدولاً یعنی اگر بهمون بگن قسم بخوری حضرتقباسی نمیتونیم روش قسم بخوری اینا رو به میگن عدل تقدیری میگه ویوقت در حال عرب و عدل تقدیر میشه فی ما صم عقیر منصرف در کلماتی که ما از عرب به شکل غیر منصرف اونها رو چکایی کردیم؟ شنیدیم فی ما صم عقیر منصرفن. و فی حسه ولی علمیتی و حالان که هر چقدر ولیسه یعنی و حال که و حالان که هر چقدر توش دقت میکنیم غیر از علمیت سبب دیگری رو توش نمیبینیم هر چی دقت میکنیم این فقط علمیت توشه هیچی دیگر نیست خب فقط علمیت هم میدونیم که یه سبب به جای دوتا سبب حساب نمیشه چون میبینیم که خیلی جاها علمیت تنها کاری نکرده نکرد علبیت یه سببش دوتا حساب نمیشه مثل جمع و تنیس نیست غیر از علبیت هم چیزی نیست پس باید یه چیزی رو ما چکار کنیم یه سبب دیگر براش بتراشیم یه سبب دیگر براش تقدیر کنیم سبب دیگر هرچی میگردیم تو اسباب دیگر سببی به جز عدل برامون پیدا نمیشه مثلا بگیم این مرکب بوده که نمیشه بگیم بگیم مثلا علف بگیم تای تا تعنیس داشته این هم که امکان نداره چون خیلی کلماتش هست مزکره بگیم مثلا فرض کنید که جمع بوده اون هم که امکان نداره هرچی از اسباب رو میگاه میکنیم به جز عهد یه چیز دیگری رو پیدا میکنیم که برای این به عنوان سبب دوم چیکار کنیم؟ به تلاشیم لذار راحت تری راه اینه که بگیم کلماتی مثل عمر که غیر منصرف استفاده شده و به جز عربیت چیز دیگری نباش در اصلش بوده عام و از عامر عدول پیدا کرده شده عمان. نزا میگه چی؟ کرر زحل مثل صداره زحل که میگه در اصل بوده ظاهر و عمر که در اصل بوده عام. البته 15 تا کلمه بیشتر در زبان عربی نیست که با این دسته. یعنی ما از تدبیری رو فقط به این 15 تا کلمه میتونیم پیدا کنیم به تقدیر ظاهر و عمر. تعریف چی؟ عالمیت خب تا اینجا شما فهمیدید که علمیت با یه سری چیزا جمع میشد علمیت مثلا با همین عدل چیه؟ جمع شد علمیت با تایتنیز مثل تله و قاتمه جمع شد بقیه میگه و تعریف و شرط و هیف هیفی من اصرفه رو. و اینو میدونستیم تعریف که ما گفتیم معرفه باشه شرط این که تحصیل کنه به عنوان یه سبب حساب بشه در باب غیر منصرف فقط و فقط چیه؟ عالمیت؟ چون گفتیمون یکی که اصلا صلاحیتش رو دو تاشون که الفلام و اضافه باشه زده با غیر منصرف بودن سه ستاشون هم که اصلا مقنی هن اسم و زمیر رو و اصلا شرایط رو نده الف و نون چطور؟ و نون زایده. الف و نون میگه وله الف و ول و نون یم و سرف وله یه الف و نون رو دوتا رو هم یه سبب حساب کرده که گفته یم نعو وله باید میگه یم یعنی الفنون که یک سببه یم نع و صرف العالم با علم جمع میشه الفنون زائده و علم مثل چی؟ که عمران عثمان ها قم الفنون داره و چی چی؟ علمیه عثمان و با وصفم جمع میشه یم نع و صرف العالم وصفه و صرف وصف رو هم میگیری یعنی علف و نون زاده با صفت هم با وصف هم دو تا سبب رو تشکیل ده وصفی که غیر القابل لتا شرطش اینه که اون صفت باید در مهنسش تایتانیس نداشته باشه چون همین تایتانیس داشته باشه جنبه چی چی؟ اسمیتش قوی میشه دیگه اون شباهت به فرد رو در دو دیگر ضعیف می کنید رضا شرط که الف و نون داشته باشیم و وصف هم داشته باشیم اینه که مهندنسش با تا نید توی هدای خوندید فن ندمانتون منصرفه ندمانه منصرفه ندمانش هم منصرفه چرا؟ چون مهندنسش داریت همیسته کس سکران، مهندنسش چیه؟ سکران میشه. قزبان معنسش قذباخت میشه اما اوریان یعنی لخت الفانون دارد و وصفم هست اما معنسش اومده چی؟ اوریانه این چیه؟ چرا؟ چون تایتنیست داره محنس. و رحمان ممکن اون یعنی رحمان، کل بر رحمان کلمه رحمان ممتنه اون منست رحمان ممتنه است. سرف ببینید یه بحثی داره که ما گفتیم و الان کلمه رحمان صفت دیگه صفت خدای تحالاست یعنی بخشنگه بسم الله الرحمن الرحیم کلمه رحمان میگه این ممنوع سرفه چرا؟ میگه چرا؟ چون معنس باطها نداره شما شرطتون این بود که چی؟ که چیزی که جنبه اسمیت رو قوی کنه نباشه حالا مهنس داشته باشه تا نداشته باشه مثل سکران و سکرا یا اصلا مثل رحمان مهنس نداشته باشه میگه شرط نیست که ببینید این رحمان رو سرش اختلاف کردن بعضی برگشتن گفتن رحمان منسرته چرا؟ چون شما شرط این بود که مهنس داشته باشد مهنسش تا نداشته باشد رحمان شرط رو نداره شرطش چیه؟ اصلا مهنس نداره؟ حالا تا داشته باشه یا نایشون. چون شما شرطتون تونیم بود محننس داشته باشد اون صفت ولی اون صفت محننس تا نداشته باشه اما این رحمان اصلا صفت محننس نداره لذا این عده ای از نوهاد برگشتن گفتن رحمان منصرفه چون شرط رو نداره اصلا محننس نداره عده برگشتن گفتن بابا معنس داشتن خود شرط نیست شرط اینه که چیزی که جنبه اسمیت رو قوی کند نداشته باشه رحمان اصلا مهنس ندارد اصلا مهنس ندارد که ما بیایم بحث بکنیم که تا دارد که جنبه اسمیت رو قوی کنه یا نداره لذا رحمان به طریق اولا چیه؟ منصرف نیست. غیر منصرفه و ممکن از سر ایشون آقای شیخ بها از دسته دومه. از دسته دوم یعنی چی؟ یعنی اینکه میگه رحمان ممنوع و صرفه چرا؟ چون مؤنث باتا ندارد شما شرط داریم بود که چیزی که جنبه اسمیات رو قبیل کنه نداشته باشه. این اصلا مؤنثش رو نداره. که ما بیایم بگیم مؤنثش تا داره که قبیل کنه یا نداره. یعنی در واقع ما در رحمان اصلا خود مؤنث رو نداریم که حالا شما بیاید بگید تا داره که جنبه اسمیات را قبیل کنه یا نداره. رضا میگه رحمان ممتنه اون من رحمان ممتن است از سر، ممنوع اون من سربه چرا؟ چون رحمانه ما نداره تمام شد این قول مشهوره البته انشاءالله در کتابهای بالاتر خواهیم کن در معانی هست که اصلا رحمان رو صفت نمیدانه میگن رحمان صفت نیست اون دیگه بحث دیده یعنی اگر ما گفتیم رحمان صفته فرق رحمان با سکران چیه؟ این هر دو چیزی که جنبه اسمیت رو قبی کنه ندارن این جنبه شباعتشون سکران مهندنس دارد و تا ندارد؟ رحمان اصلا مهندنسش رو ندارد که ما بگیم تا داره یا هم؟ ترکیب چی؟ میگه مرکب بودن که یکی از اقسام مهگانه بابا غیرمان صرفتا اون چی؟ میگه و ترکیب المزجید ترکیب المزجید نه ترکیب به مثلا ترکیب به تزی مثل ااهد اشر مغنی میکن. نهترکی به اسنادی مثل ضررب و زیده اون هم کاریشو نداریم اون جمله درست میکنه نه به اضافی مثل غلام و آموزده اون هم کاریشو نداریم جون معبلج مجبور. نه ترکیب وصفی مثل زون نل آل اونم تابع درست میکنه بلکه اونی که ما میکنیم تکیبه چه چی چیه؟ مزجی یعنی ترکیوی که دو تا کلمه با هم بچسبم مزجشن. به چهار تا بر دیگه و هیچ گونه ارتباطی بین اونها ترکیب مزجی یم نه و صرف العلم جلوی علم رو میگیره مثل بعلا بعد کل حالا کاف اون جزء اولش مبنیه چرا چون در وسط کلمه فاصله شده جزء دومشه که میشه غیرمان منصره یکی به خاطر عالمیت و یکی هم به خاطر لذا میگیم هذه بعل بعد کو رعایی تو به علاوک کرد، مرر تو به علاوک کرد وزن فعل چی کار میکنه؟ میگه وزن فعل شرط داره و وزن الفعل شرط رو الاختصاص رو بکنه وزن فعل شرطش اینه که مختص به فعل ماشه یعنی دیگه در اسم پیدا نشه. الان وزن مثلا فرست درسته فرست بر وزن است، است. ولی این وزن مشترک از بین اسم و فعل. این وزن نفر کاری را بگیر اما مثل شمره شمره وزنیه که ما در اسم وزن فقه اله بگیم این وزن مختص به اسم وزن نفر مختص به فیل وزن نفر شرط و هو شرط وزن فیل اینه که الاختصاص رو بگیر این یکی که مثل شمره شمره اسم عصفی اگر داره وزن فعلا بدریم میشه شم مرو شم مره، به شم مرع یا اگر وزن فعلش مختص نیست این مال جاییه که مختص نیست شرطش اینه رو هو به زنتن تصدیرو هو به زوا به زائد زوا ادلی یعنی زوائد فعل اگر وزن فعلش مختص نیست مثل کلمه احمد الان کلمه احمد چرا غیر منصرفه؟ علمیت دارد و وزن فعل ولی وزن افعل مختص به فعل نیست در اکرمه هست فعل در افعل و تفضیل و افعل صفت مشبهه اسمی هم چیه؟ هست. وزنش وزن مختص نیست ولی فقط یه حسن داره. اینه که در اولش مثل فعل مزاره یکی از زباعد چیه هست از این جهت وزن فعلش چی میشه؟ تقریبش یا اگر وزن فعل مختص نیست مصدر باشد اون وزن به یکی از زایدهای از زباید فعل این هم دوتا دو. حالا. حالا این وزن فعل با چه چیزای جمع میشه؟ چه وزن فعل اختصاصی چه وزن فعل غیر اختصاصی با زباید با چه چیزای جمع میشه؟ یم و سرفل علم علم رو جلوش میگیره که مال قسم اوله بود. که مختص به فعله و احمد مال قسمه دفاید آه. قسم دو کدومه زائدی که مصدره به کلمه مثل احمد یزید کلمه یزید وزن مخصوص به فعل بگیر نیست وزن فعید در غیر فعل هم بیدان میشون مثل شهید هم؟ مثل همین وزن مختص به فعل نیست ولی چون اولش یکی از زباعده حتی واقع شده که یا باشه لذا از این جهت وزن فعل خرید مثل یزید کشمره و یزید و از اون طرف مثل احمد که هسه. و الوصف و یکم جلوی وصف رو میگیره الوصف الغیر القابل التا اونم وصفی که قابلیت قبولتا رو بگید نداره مثل چی؟ احمد الان احمد محمدسش بروزن چی اومده؟ وزن همراه احمرتون؟ نگید لذا احمد میشه قیلی من سبب به خاطر یکی وصفیت وزنفل. وزنفلش از کدومه از اون مختصای غیر مختصا؟ غیر مختصا هست، مصدره به همزه فا یعملون منصرفون، اما یعمل که به معنای شطور قویه وصفیت رو داره یعمل منصرفه، چرا یعمل منصرفه؟ به دلیل اینکه معنسش اگه شطور ماده قوی باشه چی اومده؟ یعمله که آمده فا یعملون منصرفون به وجود یعمله، به وجود یعمله حالا وصفیت با چه چیزهایی جمع میشه؟ میگه وصفت و طم نعصرفل موازنه للفر با وزنلفر جمع میشه صفتیت با وزنلفر همه الان آخونیم وصفت و طم نعصرفل موازنه لفه. اما به شرط اینکه اون صفت اصلی باشه به شرط کونه ها الاسلافی به شرط اینکه این صفتیت معنای اصلی باشه در اون کلمه موازن فعل یعنی اون کلمه ای که هم وزن فعله صفتیت اگر داره باید صفتیتش چی باشه صفتیت اصلی باشه. خوندیم تو به نسبتن اربعن گفت اربعن چیه؟ منصرفه. چرا؟ چون صفتیت اصلی نیست. بدونه که اربع عدد بوده. حالا صفتیت برش آرد شده و اینجا شده صفت برنامه. البته اربع یه دلیل دیگه هم نداره. دلیل دیگه‌اش چیه؟ که اربع در مذکرش چیم، در مؤنثش چی میاد؟ اربعه با تا میاد. و صفت تم نوصرفت موازنه رفت به شرط گناه هم و عدم قبولهی اتا و به شرط اینکه تا هم قبول نکن فعربع فی مرر تو به نصفت اربع منصرفون لوجه به دلیل پس اربع در مثال مرر تو به نصفت اربع منصرف است به چه دلیل؟ به دو دلیل یکی به معنی اینکه که صفتیتش است صفتیت اصلی نیست روشو؟ و دیگری چی؟ به دلیل اینکه در موزک در موانسش چی میاد؟ عربعتم حالا به جای نسبت شما مثلا بنویسید رجال اون طرفش میشه چی؟ عربعتم مشخصه؟ پایین نگاه کنی هاشیه دروم اهدا اهده هما ادم و اصلیت وصفی وصف درش اصلی نیست لعنهو وزر اسما للعدد زیرا این وصف شده اسم بر عدد فلم یلتفت لما تر عالیه من وسیله پس اتفاقی نمیشه به آنچه آریش شده تر شده بر این از وسیله یعنی وصفیت آریزی اثر ندارد وسایل قبول هیلتا دو قبول تا میکنه فی نه و مرار تو رجال حالا همه ی باعث غیر رو فضیله همه ی باعث و جمعی اول با جمعی این با باعث غیر منصره در. کسره میگیره معلام ولی اضافه اگه الفلام بگیره یا اضافه چون اینا با جمعه فعلیت چیه شباید به فعلیت محارزه بکنه هردشون از خواست و ضرورت الفلام بگیره مثل اینکه مثلا مررتو تو بل احمره مررتو تو بل احمره اضافه بشه مررتو به مساجد کن مررتو تو به مساجده کن آه. اضافه شد و ضرورته معلامه ولی اضافه و ضرورته یعنی ضرورت شعر هم اگر باشه چیه؟ ضرورت شعر هم اگر باشه تنوین یا کسره را قبول میکنه تنوین یا کسره را قبول مثل شعری رو که منصوبه به حضرت زهره سلامون الله علی هاست. صبح علیه هاست میگه صبت علیه مساعبون صبت علیه مساعبون الان با س یعنی ریخته شده بر من ثبت یه ریخته شده بر من که لو نه ها اگر ریخته میشد این صائب لو نه ها اون برای مثل ثبت ایام سر نهاد یا، سر نهادی. که اگر اینها بر الام روز روشن ریخته می و روزها رو شب می تاریک تاریخ حالا اینجا شما میبینید که صبت علیه مسائبون تنبین گرفته آه حالا اگر همینجا مثلا بود من مسائب بگفتیم من مسائبین همکسره رو میگرفم تنبینه چرا؟ به خاطر ضرورت شبیه پس جمعه الباب یک سرومه الله میبنه اضافته و ضرورت حدیقه دوم تموم شد حدیقه سروم ساده است مباعثش رو در کتاب ادایه خوندیم باب غیر منصرف هم همه رو دو سه مرتبه خونده بودیم حالا ما امروز باز دوباره این همه توضیح دادیم دیگه به قول معلوم شما نباید تو این باب چیزی رو کم داشته لو لوانه ها